دوبارم این هرمونی که میخوام در رابطه باهاش صحبت بکنم اندورفین هست. اندورفین مسکن طبیعی بدن هست و هرمونیه که از قدرت مخاطی و هیپوتالاموس ترشح میشه و اثر اصلی اون تسکین درد. اندورفین که مورفین طبیعی بدن هم خونده میشه در حقیقت بسیار شبیه به مخدرهای مانند مورفین و دیگر مشتقات تریاک عمل میکنه. اندورفین در طی انجام فعالیت‌های بدنی، هیجانات، احساس درد، خوردن غذاهای تند و فرفری و همچنین احساس عشق و اوج لذت جنسی، همچنین در بارداری، تولد و شیردهی ترشوهش افسایش پیدا می‌کند. و جالبه که بدونید این هرمون منجر به جلوگیری از عملکرد بدن ضد جنین و پس زدن جنین به عنوان یک عضو غریبه و پیوند از بدن مادر میشه این هرمون همچنین در دوران بارداری باعث میشه که تمرکز مادر افزایش پیدا بکنه و مادر نسبت به خودش احساس خداگاهی پیدا بکنه همچنین منجر به تعدیل درد و استرس در مادر میشه و تغییراتی را هم در درک زمان و مکان در مادر ایجاد میکنه به طور کلی این هرمون مسئول ایجاد حس خوب در مادر هستش در اواخر بارداری، اندورفین به رسیدگی و بلوغ ریه جنین کمک میکنه و همچنین در تسریع جریان پرلاکتین یا همون هورمون شیردهی تاثیر گذاره. اندورفین در شیردهی از پستان بسیار اهمیت داره. این هورمون در شیر مادر هم یافت میشه. و همچنین باعث ایجاد احساس شادمانی و وابستگی دو طرفه بین مادر و جنین و در آینده کودکش میشه اگر بخوام از مزایای اندورفین در بارداری و زایمان براتون بگم این هستش که این هرمون یک از بین برنده طبیعی درد هست و کمک میکنه که مادر درد زایمان رو راحتتر تحمل بکنه همچنین این هرمون باعث میشه که شما احساس سلامتی و تقویت حالت مثبت داشته باشید. از دیگر نعمتهای این هورمون این هستش که این هرمون یک وابستگی و ارتباط دو طرفه رو بین مادر و کودکش ایجاد میکنه. در مادر اعتماد به نفس ایجاد میکنه و از همه اینها مهمتر اینکه اندورفین باعث ایجاد فراموشی در مادر میشه. و همین باعث میشه که مادر درد و وقایی سخت زایمان رو فراموش میکنه و تن به پذیرش بارداری های مجدد میده. حالا چه اقداماتی باعث میشن که ترشوه اندورفین در فرایند زایمان بیشتر بشه؟ اقداماتی مانند انجام فعالیت های بدنی و حرکت مادر در فرایند زایمان ترشوه اندورفین رو افزایش میده. علاوه بر این خندیدن چنیدن آواهای آرامش بخش هم ترشوه اندورفین رو در بدن مادر افزایش میده. علاوه بر این خوردن مواد غذایی شیرین مثل شکلات، مثل آب نباد ترشوه این هرمون رو تحریک میکنه. خود درد زایمان و فرایند زایمان هم منجر به تحریک ترشوه اندورفین میشه. همچنین قوتور شدن مادر در آب و قرار گرفتنش در استخر آب باعث میشه که ترشوهش بیشتر بشه. استفاده از طب سوزنی و طب فشاری و همچنین تکنیک های آرامسازی و ریلکسیشن هم ترشوه اندورفین رو تحریک میکنن. اما یه سری اقدامات هم ترشوه اندورفین رو کاهش میدن و اون رو مهار میکنن. این اقدامات چی هستند؟ ترس استراب، خستگی و همچنین عدم برقراری ارتباط مؤثر بین مادر و عوامل زایمان عامل دیگه عدم تحرک مادر هستش همچنین استفاده از داروهای بیدردی و بیحسی موضعی هم باعث کاهش و مهار ترشح اندورفین میشه.